سلام شما قسمت نوزدهم پادکست الف رو میشنوید هر قسمت از این پادکست روایتی از یک نمایشنامه است تو این قسمت از پادکست الف نمایشنامه معروف باغ آلبالو اثر آنتون چخوف رو براتون روایت کنیم آقای چخوف در سال 1860 در روسیه به دنیا آمد از پدری که همیشه مشکلات مالی داشت و مادری که عاشق قصه گویی بود سال 1876 وقتی که چخوف 16 ساله بود پدرش ورشکست شد و خانواده برای فرار از حکم زندان پدر به مسکو فرار کردند سال 1876 وقتی که چخوف 16 ساله بود، پدرش ورشکست شد و خانواده برای فرار از حکم زندان پدر به مسکو رفتند. چخوف توی شهر خودشون موند تا درسش رو تموم کنه و خونه رو بفروشه. خانواده تو مسکو خیلی به سختی و در فقر زندگی میکردند. وقتی چخوف 19 ساله شد، رفت مسکو پیش خانوادهش و اونجا وارد دانشکده پزشکی شد اون زمان برای تأمین حزینه تحصیل و کمک به خونوادش به نوشتن داستان کوتاه روی آورد اما بعد کم کم علاقه و استعدادش نمود پیدا کرد و به زودی پای نوشته حتی به روزنامه های معروف و پرفروش موسکو باز شد چخوف در 28 هشت سالگی موفق شد جایزه پوشکین رو برای بهترین مجموعه داستان از نظر ارزش ادبی ببره. در نوشته های اول چخوف تا حد زیادی از نویسنده های واقعگرای روس مثل تولستوی و داستایفسکی الهام گرفته شده. جالبه که خود تولستوی خیلی زود جذب کارای چخوف شد و تحسینش می‌کرد. تولستوی خیلی زود پیشمینی کرد که کارهای چخوف قراره اوندگار بشن. سال 1894 چخوف در 34 سالگی نمایشنامه مرغ دریایی رو نوشت و این نمایشنامه سال 1896 رو صحنه رفت. مرغ دریایی تو شب اول نمایشش از طرف تماشاگرها هو شد و داشت چخوف رو از کار برای تئاتر برای همیشه زده می کرد. اما یک کارگردان تئاتر خیلی از نمایشنامه مرغ دریایی خوشش میاد و پا میشه میره پیش چخوف. اگه اهل تئاتر و نمایشنامه باشید حتما کنستانتین استانیسلافسکی رو میشناسید. اون از چخوف میخواد این نمایشنامه رو در تئاتر هنری مسکو روی صحنه ببره. استانیسلافسکی نظرش به درون مایه واقعگرایانه و روانشناختی نمایشنامه میشه و این پیشنهاد رو به چخوف میده بعد از این تئاتر هنری موسکو به چخوف سفارش چند تا نمایشنامه دیگه هم میده و به این ترتیب دایوانییا سه سخاهر و باغ آلبالو برای تئاتر موسکو نوشته شدن و همشون رو هم استانیسلافسکی کارگردانی میکنه این چهار نمایشنامه جز معروف ترین نمایشنامه های تاریخ هن و باعث شدن اسم چخوف رو در کنار ایپسن به عنوان پدر مدرنیسم در تئاتر بیارن از ویژگی های معروف کارهای چخوف واقع گرایی خیلی زیاد و نمایاندن چهره واقعی بشری و رفتارهای انسانی و نشون دادن مرز باریک بین کمدی و تراژدیه. یه مثال جالب و معروفش همین نمایشنامه باقال بالوه که چخف اول به عنوان کمدی نوشتش و شما هم ریز و دروش قراره جنبه های کمدیش رو بشنوید اما استانیسلافسکی نمایشنامه رو به عنوان تراجیدی روی صحنه برد یعنی روی کرده این دو نفر به نمایشنامه به عنوان نویسنده و کارگردان متفاوت بود چخف اصلا از این قضیه خوشش نیومد و به استانیسلافسکی اعتراض کرد اما خوب یا بد نمایش به صورت خیلی عالی ازش استقبال شد. اون نه فقط تو حتی خارج از کشور هم تحسین شد و همسر چخوف اولگا نیپر اولین بار توی همین نمایشنامه روی صحنه رفت یعنی سال 1304 نقش اصلی نمایشنامه رو بازی کرد چخوف یه مدت بعد از روی صحنه رفتن نمایشنامه باغ آلبالو خب سل گرفته بود از سالها پیش اوضاع سلامتیش داشت هی بد و بدتر می شود. به خاطر همین پاشو رفت آلمان و همونجا توی کشور آلمان متاسفانه خیلی زود در چهل و چهار سالگی درگذشت این یک مختصری بود از زندگی چخوف نمایشنامه نویس معتبر و شناخته شده روس که به نظرم برای مقدمه این اپیزود کافی بود اگر دوست دارید در تولید پادکست سهیم باشید و کار ما رو حمایت کنید میتونید از طریق درگاه هامی باشه میتناید کست که آدرسش در توضیحات اپیزود قرار گرفته از این پادکست حمایت مالی کنید. در برین نمایشتان که خواهید شنید یا کیفیت خود پادکست نظرتون رو برای من بنویسید چه در شبکه های اجتماعی، چه در اپلیکیشن های پادکست این منو هم کمک هم خوشحال میکنه. از اینجا جاد که میفهمم چقدر براتون مهم بوده که بیاید و نظرتون رو برام بنویسید. متن این اپیزود رو مریم رحیمی نوشته، ویرایش متن با محدیس سفری بوده و تدوین چیزی که خواهید چنید رو شکیبا با اسدی انجام داده. من از هر سه نفر خیلی ممنونم، از شما هم ممنونم که پاکست رو میشنوید و به دوستانتون هم معرفی کنید که این خودش، بزرگترین دلگرمی برای ادامه راه من و بقیه گروهی که پشت تهیه این پادکسته. بریم سراغ باغ آلبالو، اثر آنتون چخوف. این داستان توی باغ آلبالوی خانم لیوبوف آندریونا اتفاق میفته. یک نکته ای رو باید همین اول کار بگم تلفظ اسامی روسی به شکلی که هستند واقعا کار سختیه. یعنی همیشه برای کسایی که کتاب روسی رمان روسی می خوندن و نمای روسی حالا اجرا میکردن و میخونن، تلفظ این اسامی کار سختی بوده به یاد سپردنشون هم خیلی سخته مثلا همین اگر اشتباهی حس کنید در تلفظ اسامی بهم به تذکر بدید ولی بدونید که من صادقانه تمام تلاشم رو کردم که اسامی رو درست تلفظ کنم و البته تمام تلاشمون رو هم کردیم طوری متن رو بنویسیم که شما لازم نباشه همش اسما رو به خاطر بسپارید یعنی سعی میکنیم یک نشانه هایی در متن بگذاریم که راحت تر بتونید متن رو دنبال کنید. خب برگردیم به باغ آلبالو. در اتاقی که الان اتاق بچه ها نامیده میشه، هوا گرگ میشه و به خورشید طوللو میکنه. درختای آلبالو شکوفه کردن ولی تو باغ هوا سرده و سرمایه سهرگاهی حکم فرماست. خانم لیوبوف صاحب باغ آلبالو، از پنج سال پیش رفت فرانسه و اونجا زندگی می کرده. شروع قصه اونجاییه که دختر کچیکترش آنیا همراه معلم سرخونش رفتن دنبال خانم لیوبوف و از پاریس برش گردوندن. تو این پنج سالی که لیوبوف صاحب اصلی باغ خونه نبوده دختر خوندش واریا امورات خونه رو اداره می کرده و البته از آنیا مراقبت میکرده پس خانم لیوبوف و دو تا دخترش آنیا و واریا رو شناختیم واریا مسئول مراقبت از باغ و آدمهاش بوده تو این پنج سال و آنیا هم الان رفته پاریس تا مادرش رو برگردونه خونه دونیاشا خدمتکار خونه با شم و لوپاخین تاجر با کتابی در دست وارد میشن لپاخین میگه خدا رو شکر بالاخره قطار رسید ساعت چنده؟ دونیاشا میگه به زودی دو میشه شم رو خاموش میکنه و میگه که هوا داره روشن میشه لپاخین به خونه خانم لیوبوف اومده که برای استقبالش بره ولی چون خوابش برده جامونده میگه که لیوبوف درست پنج سال خارج بوده نمیدونم الان چه شکلی شده اما آدم خوب و سادهیه یادم میاد وقتی پونزده سالم بود یه روز پدر خدا بیامرزم چنان مشتی به صورتم زد که دماغم خونی خونی شد نمیدونم دنبال چه کاری به ملک عربابی اومده بودیم اما لیوبوف اون موقع زن جوان و بسیار لاغری بود منو برد توی دستشوی اتاق بچه ها و گفت گریه نکن دهاتی کوچولو. وقتی بخوای ازدواج کنی خوب میشه دهاتی کوچولو. درسته که پدر من دهاتی بود ولی حالا من ثروتمند و پول دارم اما چه فایده وقتی فکر میکنم میبینم که دهاتی همیشه دهاتیه مثلا الان داشتم این کتاب رو میخوندم ولی چیزی ازش سر در نیاوردم به خاطر همین وسطش خوابم برد اپیخودوف، حسابدار خانم لیوبوف با یه دستگل، کت و چکمه های برخت که خیلی غیرچ و غیرش می کنن، وارد میشه در حال وارد شدن دست گل از دستش میافته دستگل رو از روی زمین برمیداره و به دنیاشا میده دنیاشا که به خاطر اومدن خانم لیوبوف استرس داره با دستگل بیرون میره اپیخودوف میگه هوا سه درجه زیر سفره ولی درختای آلبالو غرق کوفن نمیشه این آب و هوا رو تحسین کرد اصلا نمیشه روی آب و هوای ما حساب کرد اجازه بدید به عرضتون برسونم که پری روز یه جفت چکمه خریدم چنان جیرجیری میکنه که نگو و نپرس باید با چی چربش کنم؟ لپاخین؟ بی میگه بس کن حسلم اونو سر بردی. اپی میگه هر روز یه بدبختی به سراغم میاد. ولی شکایتی ندارم. عادت کردم. حتی بعضی اوقات بهشون میخندم. بعد از گفتن این حرفا اپی از صحنه خارج میشه. بعد از رفتن اپی حسابدار دونیاشای خدمتکار میگه لوپاخین باید پیش شما اعتراف کنم که اپیخودوف روز عید پاک از من خواستگاری کرده. نمیدونم چه جوابی بهش بدم. اون آدم آروم و متیه. فقط وقتی حرف میزنه نمیشه از حرفاش چیزی سر درآورد. منو خیلی دوست داره ها اما آدم بدبختیه. لوپاخین گوشاش رو تیز میکنه. گوش کن، گوش کن مثل اینکه دارم میان. ممکنه منو نشناسن. آخه پنج سال همدیگر رو ندیدیم. صدای دوتا کالسکه که به امارت نزدیک میشن شنیده میشه و لپاخین و دونیاشا به سرعت بیرون میرن صحنه خالی میشه و از اتاقهای کناری صدای هیاهو شنیده میشه لیوبوف آندری صاحب باغ آلبالو بالو دختر 17 سالش آنیا که رفته بود دنبالش فرانسه شارلوتا ایوانوونا معلم سرخونه آنیا، گایف برادر خانم لیوبوف و دایی آنیا، سیمونوف پیشچیک که ملاک و واریا دختر خانوم خانم لیوبوف که 24 سالشه و خواهر بزرگتر آنیا حساب میشه، همراه لپاخین و دونیاشا که قبل از اینکه اینا بیان داشن صحبت میکردن وارد صحنه میشد. لیوبوف با خوشحالی و با عشق میگه اتاق بچه ها اتاق محبوب من وقتی بچه بودم همینجا میخوابیدم. واریا درست مثل قدیمه. دنیاشا رو هم فوری شناختم. بعد دنیاشا رو میبوسه و واریا هم از دنیاشا میخواد که قهوه بیاره و دنیاشا به خاطر همین از صحنه خارج میشه. آنیا خیلی خسته است اما با خوشحالی میگه اتاق من انگار اصلا از اینجا نرفته بودم فردا صبح که بیدار بشم دوباره توی باغ میدوم واریا به سمت اون میره و میگه خدا رو شکر که به لخره اومدی دوباره توی خونه خودت هستی هم برگشته خوشگلم برگشته آنیا میگه هفته پرهیز بزرگ که از اینجا رفتم خیلی سرد بود شارلوتا تمام راه حرف میزد و شوبده بازی می‌کرد چرا این شارلوتا رو با من فرستادی وقتی به پاریس رسیدیم اونجا هم مثل روسیه برف و سرما بود من زبان فرانسه خوب بلد نیستم مامان طبقه پنجم یک آپارتمان زندگی می‌کرد وقتی رفتم اونجا چند تا مهمون فرانسوی داشت یه دفعه خیلی دلم برای مامان سوخت سرش رو بغل کردم و دلم نمی اومد ولش کنم مامان هم شروع کرد به گریه کردن بعد در همین حال برای واریا از اوضاع بد مالی مادرشون تعریف میکنه. ویلا رو که نزدیک مانتون بود فروخته دیگه هیچی براش نمونده من حتی یک کپک هم ندارم به زحمت خودمون رو اینجا رسوندیم اون وقت مامان اینو نمیفهمه. هر بار که تو ایستگاه راه آهن میخواستیم ناهار بخوریم گرونترین غذا سفارش میداد. به پیش خدمت ها یه روبل انعام میداد. یاشا هم برای خودش یه پرس کامل سفارش میداد. واقعا وحشتناک بود. آخه مامان یه پادو به نام یاشا گرفته. اونو هم با خودمون آوردیم خب، شما چه خبر؟ چیکار کردید؟ بحری بانک رو پرداختید؟ واریا آه میکشه. نه بابا پول از کجا بیاریم؟ قرار ماه آگست ملک رو به حراج بذارن. آنیا واریا رو آروم در آغوش میگیره و میپرسه: واریا، اون بالاخره ازت خاستگاری کرد؟ واریا سرش رو به علامت منفی تکون میده. آنیا میگه که آخه اون که تو رو دوست داره، چرا با هم صحبت نمی کنید؟ منتظر چی هستید؟ دارن هر دو درباره لپاخین صحبت میکنن واریا میگه فکر نمیکنم کنم کار ما به جایی برسه اون خیلی سر شلوغه وقتی فکر کردم به من رو نداره حتی توجهی هم بهم به نمیکنه منم البته چشم دیدنش رو ندارم همه درباره ازدواج ما صحبت میکنن ولی واقعا هیچ خبری نیست آنیا میگه باید به مامان خبر بدم پت یا تروفیموف اینجاست شیش سال قبل پدرم فوت کرد یه ماه بعدشم برادرم گیریشا پسر خوب و سالم هفت ساله تو رودخونه غرق شد ماما نتونست ساقت بیاره از اینجا رفت بدون اینکه پشت سرش رو نگاه کنه پتیا تروفیموف معلم سرخونه سابق پسر خانوم لیوبوفه برادر همین آنیا که توی رودخونه غرق شده و آنیا میترسه که این تروفیموف که معلم سابق سرخونه برادرش بوده مادرش رو یاد گریشا بندازه لیوبوف، گایف برادرش، لپاخین و پیشچیک ملاک وارد میشن گایف موقع حرکت دستاش رو طوری کن میده که انگار مشغول بازی بیلیارده میگه گوی زرد به گوشه میزنم به گوشه خاهر یه زمانی من و تو توی این اتاق میخوابیدیم نه؟ حالا من پنجا و یک ساله هستم. آنیا که میخواد بخوابه مادرش رو میبوسه و شب بخیر میگه و میره. واریا که لپاخین و پیشچیک رو مخاطب قرار داده با لحنی کنای آمیز میگه نظرتون چی آقایون؟ حیات رفت نه؟ دیگه بسته ست سه صبح. لیوبوف میخنده و میگه واریا تو اصلا عوض نشدی. واریا رو به سمت خودش میکشه و میبوسه. بعد ادامه میده دلم میخواد بالا بپرم پایین بپرم دستامو به هم بمالم نکنه خواب میبینم خدا میدونه من چقدر ذاتگاه و دوست دارم توی راه اونقدر گریه میکردم که نمیتونستم از پنجره واگن بیرون رو نگاه کنم ارحال باید قهوه رو خورد مچکرم فیرس مچکرم پیرمرد مرد عزیز چقدر خوشحالم که انو زنده ای. و فیرس که خدمتکار خونست و براشون قهوه آورده رو میبوسه که در همین حال لوپاخین میگه من امروز ساعت پنج صبح باید برم خارکوف چقدر حیف شد دلم میخواست شما رو بیشتر ببینم و بیشتر صحبت کنیم مثل قدیما زیبا و باشو کوهید. درسته که پدر من دهقان زر خرید پدر و پدر بزرگ شما بود ولی شما خود شما به من محبت خیلی زیادی کردین. به طوری که من گذشته پدر و پدر بزرگم رو فراموش کردم و مثل یه قموخی شما رو دوست دارم حتی حتی بیشتر از قوموخیش امیدوارم شما هم مثل سابق به من محبت داشته باشید لیوبوف که همچنان تو حال خودش نیست و خیلی خوشحاله میگه نمیتونم یه جا بشینم حال خودم رو نمیفهمم نمیتونم این همه شادی رو تحمل کنم بعد از گفتن این حرفا راه میفته دور اتاق و میز و کمود و دیوارها رو میبوسه کلن انگار یه خورده عقلش سرجاش نیست لپاخین که کمی عجله داره به ساعتش نگاه میکنه و میگه خیلی دلم میخواست درباره مسائل خوب و خوشایند باتون صحبت کنم اما باید برم فقط توی دو سه تا کلام خلاصه میکنم شما خوب میدونید که قرار باقالبالوی شما رو به خاطر بدهی 22 دوم ماه آگس به حراج بذارن ولی اصلا ناراحت نباشید بگیرید راحت بخوابید چهار شش تا منه پیشنهاد من اینه که ملک شما فقط 20 کیلومتر با شهر فاصله داره خب راههن هم, هم که از کنارش داره رد میشه اگه باغ آلبالو و های کنار رودخونه رو برای خونه های ییلاقی تقسیم بندی کنید و بعدن اجاره بدید حداقل 25000 روبل در سال درآمد خواهید داشت گایف میگه ببخشید ولی دارید مزخرف میگید لیوبوف میگه من اصلا از حرفاتون سر در نمیارم منظورش همون لپاخینه لپاخین میگه کمترین درآمدی که از اجاره دادن یه به دست میارید 25 هزار روبله اگه شما الان موافقتتون رو اعلام کنید من کارها رو دست میگیرم و تضمین میکنم که همه رو اجاره کنم و هیچ جا خاری نمونه خلاصه این که بهتون تبریک میگم شما نجات پیدا می کنید این ملک خیلی زیباست. فقط باید اطرافش رو تمیز کرد مثلا باید همه خونه های قدیمی از جمله همین خونه رو که دیگه به هیچ دردی نمیخوره خراب کرد و درختای آلبالوی باغ رو قطع کرد لیوبوف میگه درختای آلبالو رو قطع کنیم ببخشید عزیزم مثل اینکه شما چیزی سرتون نمیشه. اگه توی تمام این منطقه یه جایی درست سای پیدا بشهی باغالبالوی ماست. لوپاخین باز به ساعتش نگاه میکنه و میگه ولی اگر فکر نکنید و دست به کار نشید بیست و ماه آگست با آقا رو به حراج میذارن پس تصمیم بگیرید قسم میخورم که چاره دیگه ای ندارید در همین حین واریا و یاشا وارد میشن واریا برای لیابوف دو تا تلگراف آورده و اونا رو بهش میده اما خانم لیوبوف اونا رو بدونه اینکه به خونه پاره میکنه و میگه تلگراف از پاریس بودن و اونم دیگه نمیخواد با پاریس هیچ کاری داشته باشه. گایف میگه لیوبا. لیوبا همون محبت آمیزه لیوبوف. میگه لیوبا. میدونی این گنج چند سال از عمرش گذشته؟ هفته پیش طبقه پایینش رو بیرون کشیدم و تاریخ ساختش که روشک شده رو دیدم. درست صد سال قبل ساخته شده میتونیم سال سالگیش رو جشن بگیریم ای گنجای خیلی محترم تو صد سال است در راستای ادالت و اهداف خیرخواهانه به ما خدمت کردی لوپاخین میگه خب من دیگه باید برم اگه درباره ساختن خونه یه فکری کردید و تصمیم گرفتید به من خبر بدید من حدود پنجا هزار روبل میتونم وام بگیرم واقعا بهش فکر کنید بعد دست خانم لیوبوف رو میبوسه و با بقیه هم خداحافظی میکنه و میذاره میره بعد از اینکه میره گایف میگه مردک بی شرم هر چند ببخشید مثل اینکه واریا میخواد زنش بشه واریا خجالت میکشه و از سر خجالت تکذیب میکنه اما لیوبوف میگه که چه خوب واریا من خیلی خوشحال میشم اون آدم خوبیه پیشچیک هم تعیید کنان میگه راستشون مرد خیلی لایقیه داشنکای منم هم همینو میگه پیشچیک وسط این جملش یه لحظه خوابش میبره بعد باز داره بلا فاصله ویدار میشه میگه به هر حال سرکار خانم محترم من مبلغی پول قرض میخوام دویست و چهل روبل به من قرض بدید فردا باید بهره بانک رو بدم واریا با وحشت میگه نه لیوبوف هم میگه راستشو بخواید من هیچ پولی ندارم پیشچیک با خنده و بیخیالی میگه پیدا میشه پیدا میشه من هیچ وقت امیدم را از دست نمیدم مثلا یه وقتی فکر میکردم به زودی شکست میشم ولی دیدید که یهو همچین راه راهن اومد از وسط زمین من رد شد و پولی گیرم اومد حالا هم امروز فردا ممکنه یه اتفاقاتی بیفته واریا پنجره رو باز میکنه و میگه خورشید دیگه طلوع کرده هوا سرد نیست در جا نگاه کنی چه درخت های زیبایی خدای من چه هوایی سارها دارن میخونن لیوبوف از پنجره بیرون رو نگاه میکنه و بازم احساساتی میشه و یاد گذشته ها و کودکیش توی باغ میفته گایف میگه بله هرچند غیر قابل تصوره ولی این باغ به خاطر بدهی به زودی حراج میشه تو این لحظه تروفیموف معلم سرخونه سابق پسرخانه لیوبوف که قبلا باش آشنا شدیم با عینک و لباس فرم کهنه دانشجویی وارد میشه و با خوشحالی و اشک میگه لیوبوف اندریوونا من فقط برای عرض سلام خدمت رسیدم فورا میرم به من گفته بودن که تا صبح شب کنم ولی طاقت نیاورد لیوبوف پتیار رو بغل میکنه و جفتشون آهسته گریه میکنن. واریا هم که داری گریه میکنه میگه بهت گفته بودم تا صبح کن. کو. لیوبوف آروم اشک میریزه و میگه گریشای من. پسرم از دست رفت. غرق شد. آخه چرا؟ خب پتیا چه خبر؟ چرا انقدر و چکسته شدی؟ اون وقتا یه پسر بچه بودی، یه دانشوی جوون و مهربون. اما حالا موات کم شده و عینک میزنی. نگو که هنوزم دانشجویی. تروفیموف میگه اون روز تو قطار یه زن منو ارباب کچل صدا زد تقدیر اینه که من دانشجوی ابدی باشم پیشچیک باز میگه من فردا دیویست و چهل روبل لازم دارم به هم قرض بدید تو رو خدا مبلغ ناچیزیه پس میدم لیوبوف میگه باشه گایف تو بهش بده. چه میشه کرد؟ بده لازم داره دیگه. و بعد با آتروفی و پیشچیک بیرون میره. گایف واریا و یاشا میمونن. گایف میگه خوهرم هنوزم نمیتونه خیلی خرج نباشه. <تصفح> کاش میشد برای باقه آل بالو کاری کرد. من به مغزم فشار میارم و میبینم راه های زیادی وجود داره. خیلی زیاد. ولی خب این معنیش اینه که هیچ راه و چاره ای نیست. کاش میشد آنیا رو به یه آدم پولدار شوهر میدادیم. کاش میشد به خونه عمه بریم و ازش کمک بخوایم. عمه جانم خیلی پول داره. اما ما رو دوست نداره چون خواهرم زن یه اشرافزاده که نشد هیچ. رفتارشم خیلی خوب نبود. خواهرم مهربون و ها منم اونو خیلی دوست دارم. ولی خب باید قبول کرد که عیب و هم کم نیست. آنیا وسط حرفای گایف وارد صحنه شده. وقتی حرف گایف تموم میشه میگه نتونستم به خوابم. خوابم نمیبرد. گایف دست و صورت آنیا رو میگیره میبوسته و میگه کوچولوی من. تو فقط خوهرزادهی من نیستی. تو فرشتهی منی. تو فرشتهی منی. حرفمو باور کن. آنیا میگه که باور میکنم دایی جان همه تو رو دوست دارن و بهت احترام میذارن ولی ببین دایی جان تو نباید خیلی حرف بزنی فقط باید سکوت کنی همین الان داشتی در بری خواهر خود چی میگفتی چرا داشتی این حرفا رو میزدی گایف با ناراحتی و شرمندگی میگه که بله واقعا این حرفا وحشتناک هم خدای من منو نجات بده امروزم جلوی گنجه چه حرفایی زدم خدایش. چقدر احمقانه بود. واریا میگه درست دایی جان شما باید حرف نزنید. همین اگه حرف نزنید خودتونم راحت ترید. گایف میگه باشه. سکوت می کنم فقط در مورد کار حرف میزنم. پنشنبه که رفته بودم دادگاه معلوم شد که میشه سفته داد و پول قرض کرد و بهره بانک رو داد. سشنبه دوباره میرم و صحبت میکنم. نگران نباشی دخترو درست میشه. من مطمئنم درست میشه. به شرافتم قسم میخورم. این ملک تراج نمیشه. مگه من میذارم اینجا رو حراج کنم. با تمام وجودم قسم میخورم. آنیا دوباره احساس آرامش و خوشبختی میکنه و میگه دایی تو چقدر خوبی، چقدر عاقلی. بعد داییش رو در آغوش میگیره. فیرس خدمتکار خونه وارد میشه و سرزن شامیز میگه چرا نمیخوابید؟ بعد از این حرفش گایف بیرون میره. آنیا روی صندلی نشسته و واریا براش تعریف میکنه که اوضا تو خونه هم بده. در واقع این جوابیه با اون حرفای آنیاس که درباره برای اوزای مادرش تو فرانسه زد. واریا میگه که خدمتکار تازگیا تازگی ها به مسافرای سرگردون و ولگرد اجازه میدن شب رو پیششون بمونن. اما شایعه پراکنی کردن که من گفتم به مسافرا فقط نخوت بدید. گفتن من خسیسم. اما آنیا روی سندلی خوابش برده و جواب واریا رو نمیده. واریا زیر بازوش رو میگیره و با هم به سمت اتاق آنیا میرن. توی راه رو واریا آروم آنیا رو نوازش میکنه و میگه روح و جان من خوابید بریم عزیزم بریم توی دشت ساختمان کهنه و متروک کلیسای کوچک دیده میشه. نیمکتی کهنه اونجا قرار داره و باغ آلبالو از سمتی که های سپیدار سر به فلک کشیدند شروع میشه. در افق نمای شهر بزرگی که فقط توی هوای صاف و روشن پیداست دیده میشه. خورشید به زودی روب میکنه شارلوتا معلم سرخونه یاشا پیش خدمت و دونیاشا خدمتکار خانواده روی نیمکت نشستند اپیخودوف حسابدار ایستاده و داره گیتار میزنه همه در فکر فرو رفتن شارلوتا کلاه کاسکت ای به سر داره و تفنگ رو از شانه برداشته و سگک روی بند اون رو مرتب میکنه قرقه توی فکر میگه من حتی یه پاسپورت واقعی ندارم پاسپورت اون زمانا توی روسیه به عنوان شناسنامه استفاده میشده نه چیزی که ما الان به عنوان پاسپورت میشنسیم آره این میگه که من حتی یه پاسپورت واقعی ندارم نمیدونم چند سالمه همیشه به نظرم میرسه که جوونم. من وقتی کوچیک بودم پدر و مادرم توی بازارهای مکاره نمایش میدادم. منم اونجا شیرینکاری انجام میدادم. وقتی که پدر و مادرم مردند یه خانم آلمانی منو پیش خودش برد و به من تعلیم داد. روزگار خوبی بود. من بزرگ شدم، مربی سرخونه شدم. ولی نمیدونم کی هستم و اهل کجام پدر و مادرم هم نمیدونم چه کسایی بودن شاید اصلا با هم ازدواج نکرده بودن بعد از گفتن این حرفهای بسیار ناراحت کننده خیاری از جیبش بیرون میاره و مشغول گاز زدن خیار میشه اپی گیتار میزنه و میخونه مرا چه کار است با این دنیای پر هیاهو؟ مرا چه کار است با این دوستان و دشمنان چقدر نباختن ماندولین دلشین است دنیاشا در حالی که خودش رو تو آینه نگاه میکنه و آرایش میکنه میگه که این گیتار نه ماندولین اپی میگه برای کسی که عاشق این ماندولینه من آدم با معلوماتی هستم کتاب های مختلف و جالبی میخونم ولی نمیتونم هدفم رو مشخص کنم بفهمم واقعا چی میخوام نمیدونم که میخوام زندگی کنم یا خودم رو بکشم راستش رو بگم تقریبا به همین دلیل همیشه با خودم یه تپانچه حملی میکنم اینهاش هاش اینو میگه و یه کاره یه تپانچه در میاره به بقیه نشون شارلوتا میگه اپی تو آدم خیلی عاقلی هستی خیلی هم خطرناکی زنها حتما تو رو دیوانوار دوست دارن این آدم های خیلی هم احمقن هیچکس کس نیست باش حرف بزنم همیشه تنهایی تنهام هیچ ندارم نمیدونم کی هستم نمیدونم چرا به دنیا اومدم هیچی معلوم نیست بعد باز خیلی آروم و بیعجله از صحنه خارج میشه اپیخودوف میگه که راستش چیزای دیگه به من ربطی نداره فقط درباره خودم حرف میزنم و اینکه چرا سرنوشت با من بیرحمه رفتار سرنوش با من مثل رفتاریه که توفان با یه قایق کوچیک داره. اگه اشتباه میکنم پس چرا امروز صبح که از خواب بیدار شدم دیدم که یک انکبوت وحشتناک رو سینم نشسته. به این بزرگی با دستش داره اندازه یه انکبوت رو نشون میده مثل من. بعد خواستم نوشیدنیم و بخورم دیدم تو کاسه یه حشره زشت مثل سوس کفتد. دونیاشا. میل دارم برای چند کلمهی مزاحم شما بشم. دنیاشا میگه که بفرمایید. اما اپی میگه دوست دارم تنهایی با شما صحبت کنم. دنیاشا شرم زده میگه باشه. فقط اول شنل منو بیارید کنار گنج است. اینجا خونک. و اپی میره. شاید پیش خدمت با تمسخر میگه که این یارو خود خود بدبختی ها بین خودمون باشه آدم احمقی هم هست دنیاشا میگه من نگرانم واقعا نگرانم خودشو بکشه من بچه بودم که آوردنم پیش اربابها حالا دیگه به زندگی معمولی عادت ندارم دستام مثل دستای دوشیز خانم های اشرافی سفیده و از همه چیز میترسم اگه شما هم بخواید منو فریب بدی دیگه نمیدونم چی به سر اعصابم میاد. یاشا میگه که هر دختری باید جایگاه خودشو بشناسه. من بیشتر از هر چیزی از خانمایی که رفتارشون زشته بدم میاد. دنیاشا میگه من شما رو خیلی خیلی دوست دارم. شما تحصیل کرده هستید میتونید درباره همه چیز صحبت و اثاره نظر کنید. یاشا؟ خمیازه میکشه و میگه بله به نظر من اگه دختری کسی رو دوست داشته باشه دختر فاسد و هرزه‌ایه سیگار کشیدن در هوای آزاد چقدر دلچسبه چقدر گوش تیز میکنه و میگه که هر بابا دارم میام اینجا یه طوری برید انگار برای آبتنی اومده بودید مگه نه فکر میکنم با من قرار داشتید من اصلا تعمل چنین خفتی رو ندارم بعد دنیا شا آروم و با ناراحتی میره یاشا تنها کنار کلیسای کوچیک مونده که لیوبوف، گایف و لپاخین وارد میشن لپاخین میگه باید تصمیم جدی گرفت زمان منتظر نمیمونه آخه مسئله کاملا ساده است حاضری زمین ها رو برای ساختن ییلاق اجاره بدید یا نه؟ فقط یک کلام بله یا نه فقط یک کلمه. بعد از اینکه با این همه اصرار و اقراق حرفاش رو میزنه لیوبوف بیعتنا داخل کیف رو نگاه میکنه و میگه که دیروز پول داشتم ولی امروز چیزی نمونده واریای بیچارم به خاطر جویی به همه فقط شیر برنج میده و آشبازخونه به خدمتکارای پیر فقط نخود پخته میدن اون وقت من بدون فکر پولها رو هدر میدم لپاخین میگه که دریگانوف سروتمند میخواد ملک شما رو بخره میگه خودش شخصا برای مزایده میاد تو شهر شنیدم گایف میگه که امه جان قول داده پول بفرسته اما کیو چقدرش معلوم نیست لوپاخین میگه چقدر مگه میخواد بفرسته ست هزار دیویس هزار لیوبوف میگه که خب ده یا 15 هزار تا همین مقدار هم دستش درد نکنه لوپاخین میگه ببخشید ولی تا به حال تو عمرم آدم به این اندازه بیفکت بی, فکر، بی دست و پا و عجیب ندیدم بابا دارم به زبان روسی با شما حرف میزنم املا املاکتون داره حراج میشه اون وقت شما اصلا حالیتون نیست لیوبوف میگه که خب چیکار میتونیم بکنیم واقعا چه کاری از دستمون برمیاد یادمون بدید لوپاخین میگه که من که هر روز دارم یادتون میدم و تکرار میکنم شما باید با آلبالو رو برای ساختن خونه ییلاقی اجاره بدید هر چه زودتر باید این کارو بکنید وگرنه هراچ خیلی زود میرسه میفهمید یا نه همین که برای ساختن به اجاره ییلاغ تصمیم بگیرید هر چه قصد بخواید بهتون میدن اون وقت نجات پیدا میکنید لیاو میگه که اصلا مسئله ییلاغ و ییلاغ نشینا ها مسئله ما نیست مسئله ییلاغ و ییلاغ نشین ها کاملا مزخرفه گایف هم اونور باش موافقت میکنه لپاخین با درماندگی و عصبانیت میگه الان از دست شما برادر خوار من چیکار کنم بابا داره اشک من در میاد. دیگه نمیتونم تحمل کنم چون ما شما دارید من رو زج کش کشت و میخواد که بره لیوبوف وحشت زده میگه نه نه بمونید خواهش میکنم. شاید با هم یه فکری کنیم. برحال وقتی هستید به ما بیشتر خوش میگذره. من همش منتظرم یه اتفاق بد بیفته مثلا خونه رو سرمون خراب بشه. ما خیلی گناه دو لپاخین میگه خب مگه شما چه گناهی کردید الان؟ گایف که داره آب نبات میذاره تو دهنش میگه من تمام سروتم رو خرج آب نبات کردم. لیوبوف آه میکشه. من همیشه مثل دیوونه پولام رو به حد مرگ ریخت و پاش کردم زن مردی شدم که فقط بلد بود قرض کنه شوهرم به خاطر زیاد روی تو خوردن شامپاین مرد از شانس بعد عاشق مرد دیگه شدم درست همین موقع ولی مجازات گریبانم رو گرفت پسر کچوروی من غرق شد تو همین رودخونه من به خاطر همین برای همیشه از اینجا رفتم تا دیگه بر نگردم و چشمم به این رودخونه بیفته. چشمم رو روی همه چیز بستم. اونم به دنبالم اومد. سنگدل و خشن. یه ایداغی دوروبر مانتون خریدم. شوهرم اونجا ناخوش شد. سه سال تمام نه شب داشتم نه روز. مردک مریض منو از تاب و تبان انداخت. روحیم رو از دست دادم. بالاخره پارسال ویلا رو به خاطر بدهی زیاد حراج کردم. بعدش به پاریس رفتیم. اونجا تیغم زد و بعد ولم کرد. رفت دنبال یه زن دیگه میخواستم خودکشی کنم چقدر شرماور و احمقانه یک دفعه روسیه وطنم و دخترکم منو برگردوندن خدایا به من رحم کن بیشتر از این مجازاتم نکن بعدش تلگرافی از جیبش در میاره و میگه که اینو امروز از پاریس گرفتم. ازم معذرت میخواد و التماس میکنه که برگردم. تلگراف رو پارپوره میکنه و میگه این صدای موسیقی از کجا داره میاد؟ گایف میگه این ارکستر معروف یهودی های خودمونه. یادت میاد؟ لیوبوف شگفت زده میگه اونا هنوز هستن. هر طور شده باید یه مهمونی بدیم و دعوتشون کنیم. لپاخین میگه که دیروز توی تئاتر یه نمایش مزهک دیدم. لیوبوف میگه که مطمئنم اصلا خنددار نبوده. شما بهتره به جای تماشای نمایش بیشتر خودتون رو تماشا کنید. چقدر زندگی شما یک نواخت و کسالت آوره. لپاخین میگه درسته باید حقیقت رو گفت. زندگی ما بسیار احمقانه است. پدر من یک دهاتی احمق بود. چیزی نمی‌فهمید. به من هم چیزی یاد نداد. فقط مست میکرد و کتکم میزد. من هم مثل اون خرفت و احمقم. هیچ وقت چیزی یاد نگرفتم. خطم خیلی بده. مثل خوک میمونم. لیوبوف میگه دوست من شما باید ازدواج کنید. کاش این واریای ما رو میگرفتید. دختر خوب و مهربونیه. تازه. همشم هم در حال کار کردنه. شما هم که ازش خوشتون میاد. لپاخین میگه چرا که نه من مخالفتی ندارم دختر خوبیه و بعد همشون سکوت میکنند فیرس وارد میشه پالتوی با خودشا برده پالتو رو به گایف میده و میگه بفرمایید پالتوتون رو بپوشید هوا خونک گایف پالتو رو میپوشه و میگه برادر تو هم منو کلافه کردی لیوبوف میگه فیرس چقدر پیر شدی فیرس میگه من عمرم زیاده وقتی میخواستند برام زن بگیرن پدر شما هنوز به دنیا نیمده بود اون موقع که دهقانا رو آزاد کردم من دیگه پیش خدمت مخصوص شده بودم من داوطلبانه پیش ارباب ها موندم نخواستم آزاد بشم یادم میاد که همه خوشحال بودن ولی خودشون هم علت خوشحالیشون رو نمیدونستم. گایف میگه که فیرس ساکت شو من فردا باید به شهر برم. قول دادم منو با یه ژنرال که در مقابل سفته پول قرض میداشنا نکنه. لوپاخین میگه هیچ راهی نمیتونید پیدا کنید. خیالتون راحت. بدهیتون رو نمیتونید پرداخت کنید. لیوبوف هم میگه لاف میزنه. هیچ ژنرالی در کار نیست. تروفیموف معلم سابقه پسر لیوبوف آنیا و واریا میان. لیوبوف هم به استقبال دختراش میده همه میشینن و لپاخین شروع میکنه سر به سر تروفیموف میذره میگه که دانشجوی عبدی همه چه با دخترها میپله داره 50 سالش میشه اولی هنوز دانشجوه تروفیموف میگه دست از سرم بردار لپاخین در حالی که میخنده میگه اجازه بدید بپرسم نظر شما درباره باری من چیه تروفیموف میگه یرمولای الکسیویچ برداشت من از شما اینه که آدم پولداری هستید به زودی میلیونر میشید همونطور که در تحول ماده وجود حیوان درندهی که سر راهش همه چیز رو برمیداره لازمه بودن تو هم لازمه بعدش همه میخنده تروفیموف باز ادامه میده میگه دیروز مدت طولانی صحبت کردیم ولی به نتیجه این طبق چیزی که شما درک می کنید توی وجود انسان مقرور نیروی ارفانی وجود داره ولی آخه چه غروری وقتی ساختمان بدن انسان تا این حد ناچیز و بیاهمیت ساخته شده وقتی اکثریت موجودات بشر تا این حد خشن و نادون و بدبخت هستند اصلا آیا ممکنه باز هم قرور معنایی داشته باشه؟ باید دست از خودپرستی و قرور برداشت و فقط کار کرد گایف میگه که چه فرقی میکنه آدم به هر حال میمیره. تروفیموف میگه کی میدونه و اصلا میمیره معنیش چیه. شاید انسان داره 100 تا حس باشه که با مردنش فقط اون پنج حسی که ما میشناسیم از بین بره و بقیه یه نوید تا باقی بمونه. لیوبوف میگه که پتیا چقدر شما باهوشید. تروفیموف میگه همون پتیا. بشریت در حالی که نیروهای خودش رو تکامل میبخشه پیش میره. یه روز براش قابل فهم و دستیافتنی میشه. فقط باید کار کرد و با تمام نیرو به کسایی که در جستجوی حقیقت هستن کمک کرد. توی روسیه تعداد انگشت شماری هستن که کار میکنن. تا جایی که من میدونم اکثر روشنفکرایی که میشناسم دنبال کاری نیستند و هیچ کاری هم انجام نمیدن. در زم به درد هیچ کاری هم نمیخورن خودشون روشن فکر میدونن اما خدمه رو تو خطاب میکنن با دهاتی ها مثل حیوان برخورد میکنن بد تحصیل میکنن چیزی رو جدی نمیخونن درباره علوم فقط حرف میزنن و از هنر هیچ سر ندارن و خودشونو رو مهم میدونن ولی فقط خودشونن که برای خودشون ارزش قائلن و به خودشون چهره جدی میگیرن. لپاخین میگه که میدونید من صبحا قبل از ساعت پنج بیدار میشم و از صبح تا شب کار میکنم. خب همیشه پولهای خودم و دیگران رو دستم دارم. به خاطر همین مردمی که اطرافم هستن رو میشناسم. ببینید فقط کافیه که کاری رو شروع کنی تا بفهمی چقدر انسانهای شریف و با وجدان تعدادشون کمه. گاهی وقتی خوابم نمیبره با خودم فکر میکنم و میگم خدایا تو جنگل وسیع و دشت بیکران رو به ما اهدا کردیم. ما که تو این همه نعمت زندگی میکنیم واقعا باید مثل قول باشیم. لیوبوف میگه آخه شما به قول نیاز دارید ولی اونا فقط تو قصه ها خوب و مهربونن وگرنه وجود واقعیشون ما رو به وحشت میندازه همه نشستن و به فکر فرو رفتن سکوت حکم فرماست تا اینکه رهگذر مستی که کلاکاسکت کهنه و رنگ رو ای به سر و پالتویی به تن داره نزدیک میشه رهگذر در حالی که سرفه میکنه به واریا میگه مادمازل به این روس گرسنه سی کوپک کمک کنید واریا وحشت میکنه و جیغ میکشه لیابوف دست پاچه تو کیفش دنبال پول میگرد میگه س... سکه نقره ندارم بیاید این سکه تلا رو بگیرید رهگذر تشکر میکنه و خندان دور میشه واریا با ناراحتی و پریشون میگه من میرم بابا من میرم مادر جان ما تو خونه چیزی برای خوردن نداریم اون وقت شما سکه تلا میبخشید لیوبوف فانارتی میگه آ، من ابله. وقتی برسیم خونه همه دار و ندارم رو میدم به تو یرمولای الکسیویچ لطفا بازم به من پول قرض بدید لپاخین میگه چشم ولی خانومها ها آقایون بازم یادآوری میکنم که 22 آگست باغ آلبالو حراج میشه به این مسئله فکر کنید همه به جز تروفیموف و آنیا بیرون میرن آنیا میخنده باید باید از کوزار ممنون باشیم که واریا رو ترسوند و بالاخره تنها شدیم تروفیموف میگه واریا میترسه ما عاشق هم بشیم واسه همین تمام روز ما رو تنها نمیذاره اون با فکر محدودش نمیتونه درک کنه که احساس ما والاتر از عشقه آنیا میگه که پتیا شما با من چیکار کردین؟ چرا دیگه باقه آلبالو رو مثل قبل دوست ندارم؟ من این باغ رو اونقدر دوست داشتم که فکر میکردم توی دنیا جای بهتر از اون وجود نداره تروفیموف میگه سراسر روسیه باغ ماست توی این زمین پهناور و زیبا جاهای شگفتنگی زیاده. آنیا یه لحظه فکر کنید. پدر و جد شما صاحب ملک و دهقان ها بودن. مالک آدم های زنده بودن. حالا از هر درخت آلبالو، از هر برگ و هر تنه درخت توی این باغ یه موجود زنده به شما نگاه میکنه. صدای اونارو رو نمیشنوید؟ صاحب جان آدم ها بودن ما و گذشتگان ما رو عوض کرده مثلا شما مادر و دایی تو متوجه نیستید که تا گردن تو قرص رو رفتید و به حساب کسایی دارید زندگی می که یه وقتی اونا رو جلوتر از درخونه راه نمیدادید. ما حداقل دقل سال عقبیم هیچ نداریم هیچ رابطه مشخصی نسبت با گذشته نداریم فقط فلسفه بافی می کنیم کاهیم از قصه ه ولی آخه معلومه برای اینکه بخوایم تو زمان حال زندگی کنیم باید گناهان گذشتهمون رو جبران کنیم و جبران اون فقط با رنج کشیدن و با کار سخت و مداوم امکان پذیره آنیا لطفا بفهمید چی دارم میگم آنیا میگه خونه ای که ما توش زندگی میکنیم مدت هاست دیگه مال ما نیست من از اینجا خواهم رفت به شما قول میدم تروفیموف میگه کلید این خونه رو بنداز توی چاه و برو مثل باد رها باش من هنوز سی سالم نشده جوونم هنوز دانشجو ولی چه چیزهایی که تحمل نکردم وقتی زمستون میرسه گرسنگی فقر ناخوشی و نگرانی به سراغم میاد و منو به گدایی میکشونه ولی با همه اینها روحم همیشه پر از احساسات مبهمه آنیا من خوشبختی رو پیش پیشبینی میکنم من اونو میبینم آنیا میگه ماه داره بالا میاد صدای گیتار اپیخودوف با همون آهنگ غمگین هم داره شنیده میشه واریا جایی نزدیک درختای سپیدار دنبال آنیاست و اونو صدا میزنه تروفی میگه بله ماه بالا اومده خوشبختی همینه همینه که داره میاد نزدیک و نزدیکتر میشه من صدای قدم هاشو می یعنی اگه ما اونو نبینیم و نشناسیم دیگران اونو میبینن صدای واریا میاد که از لای میگه آنیا کجایی تروفی میگه میگه بازم واریا نفرت انگیزه آنیا پیشنهاد میده برن کنار رودخونه هر دو راه میافتند و از صحنه خارج میشن. اتاق نهارخوری توسط تاقی گوستار از سالن جدا شده لوستری روشنه از اتاق جلوی صدای ارکستر سه نفره به گوش میرسه این همون ارکستریه که در پرده قبل بهش اشاره شد شب و مهمونا در سالن مشغول رقص هستند زوج اول پیشچیک و شارلوتا زوج دوم تروفیموف و لیوبوف زوج سوم آنیا همراه با کارمند پستخونه زوج چهارم واریا بر رئیس ایستگاه راه همینطور بقیه زوج واریا در حال رقص گریه میکنه و اشکاش رو پاک میکنه. دنیاشا و همراهش آخرین زوج هایی هستند که وارد میشن. پیشچیک با صدای بلند اعلام میکنه دور بزرگ تعادلتون رو حفظ کنید. زانو بزنید و از خانم های همرقص خودتون تشکر کنید. فیرس فراک پوشیده و توی سینی معدننی می گردونه. فراک همون کتهای دنبال دار رو میگن. پیشچیک میگه من فشار خون دارم تا حالا دو بار دچار حمله شدم. رقصیدن برام سخته ولی اگه واق واق نکنم لاقل میتون بونه از اتاق کناری صدای بازی بیلیارد میاد واریا نزدیک میشه و میگه نوازنده آوردن. با کدوم پول میخواد آخه دستموزه رو بدم و بعد سراسیمه خارج میشه تروفیموف به پیشچیک میگه اگه شما انرژی که سر تا سر زندگیت صرف قرض گرفتن پول جهت پرداخت بدهیتون کردید صرف کار دیگه ای میکردید یقینا میتونستی زندگی تو عوض کنی لیابوف میگه چرا هنوز از گایف خبری نشده؟ تو شهر چی کار میکنه؟ تروفیموف میگه که احتمالاً حراج انجام نشده لیوبوف با افسوس میگه هم دعوت نوازنده ها بیجا بود هم مهمونی رقص ولی خب ایت نداره دیگه کم که میگذره لیوبوف باز میگه از گایف خبری نشده؟ این همه وقت تو شهر چی کار میکنه؟ من نمیفهمم چه ملک فروش رفته باشه چه نرفته باشه حتما دیگه تموم شده چرا این همه ما رو بیخبر نگه داشته. واریا که سعی میکنه آرومش کنه میگه که من مطمئنم دایجان خودش ملک رو خریده تروفیموف با مسخره میگه که آره حتما واریا میگه مادر بزرگ براش وکالت نامه فرستاد تا ملک رو به اسم اونو به خاطر آنیا بخره من مطمئنم خدا به دایجان کمک میکنه لیوبوف میگه مادر بزرگ فقط هزار روپ فرستاده تا ملک رو به اسمش بخریم این پول حتی برای پرداخت بهره بانکی هم کافی نیست بعد صورتش رو با دستش میپوشونه و میگه سرنوشت من امروز تعیین میشه تروفیموف سر به سر واریا میذاره و همش مادام لوپاخینا صداش میکنه واریا با عصبانیت میگه دانشجوی ابدی تا چند بار از دانشگاه اخراجت کردن لیوبوف میگه باری حالا چرا عصبانی میشی اون سر به سرت میذاره مگه چی میشه حالا اگه دوست داشته باشی میتونی زنه لوپاخین بشی اون آدم خوب و جالبیه اگه هم دوست نداره خب زنش نشو کسی تو رو مجبور نمیکنه چرا سختی میکنی باریا میگه که مادر جون اون مرد خوبی ازش خوشم میاد اما من که نمیتونم ازش خواستگاری کنم الان دو ساله که همه دربار منو اون صحبت میکنن ولی اون مسخره بازی در میاره یا اینکه سکوت میکنه من میفهمم که اون روز به روز سروتمند تر میشه میفهمم که سرش گرمه کاره ولی خب وقتی هم برای من نداره اگه پول داشتم حتی مثلا 100 روبل همه چیز رها میکردم و از اینجا به یه سومه میرفتم بعد از گفتن این حرفا خارج میشه لیوبوف میگه پتیا اینقدر سر به سر واریا نذارید میبینید که همین طوریش هم ناراحت پتیا یا همون تروفیموف میگه اون زیادی جدیه. کل تابستون به من و آنیا با هم تنها باشیم. میترسید نکن عاشق هم بشیم. به اون چه ربطی داره؟ ولی من بروی خودم نمی چون از رزالت به دورم. ما بالاتر از عشق قرار داریم. لیوبوف میگه پس لابود منم پایین تر از عشق قرار دارم نگه. بعد هم باز دوباره درباری برادرش و فروخته شدن ملک اصحار نگرانی میکنه. تروفی میگه چه فرقی میکنه که امروز ملک فروخته شده باشه یا نه مسئله باغ مدت هاست که تموم شده هیچ راه برگشتی نیست کار از کار گذشته عزیزم چشمتون رو به روی حقیقت باز کنید لیو میگه چه حقیقتی؟ شما حقیقت از غیر حقیقت تشخیص میدید؟ اون وقت من کورم نمیبینم شما با شجاعت مسائل مهم رو حل میکنید ولی عزیزم دلیل این که مشکلات تو را عذاب نمیده جوونی توه. هنوز به جای سفت بر نخوردی. زندگی هنوز از چشمهای جوان شما پنهانه. شما شجاعتر، پاکتر و امیختر از ما هستید. ولی فکر کنید و اون وقت چمی با ما مهربونتر باشید. من اینجا به دنیا اومدم. این خونه رو دوست دارم. بدون باغ آلبالو زندگی برام مفهومی نداره. اگه فروختن این باغ لازمه پس منو هم بفروشید لیوبوف احساساتی میشه، تروفی موف رو با اینکه این حرفا رو به شدت بغل می‌کنه، میبوسه و میگه: "آخه پسر من اینجا غرق شد. به من کمک کن." تروفی موف هم میگه که من درکتون میکنم. لیوبوف ولی میگه که حتی نمیتونی تصورش رو بکنید که امروز چقدر روحی هم خرابه. منو سرزنش نکنید. من شما رو مثل یکی از اعضای خونوادم دوست دارم. خصم می می‌خورم با کمال میل حاضر بودم آنیا رو به شما بدم ولی عزیزم هر دوی شما باید درس بخونید باید دانشگاه رو تموم کنید شما هیچ کاری نمی‌کنید هیچ کاری ندارید برای انجام دادن خودتون رو همینطوری سپردید به دست سرنوشت خیلی عجیبه اشتباه می‌کنم بگو اشتباه می‌کنی تازه باید یه کاری هم برای ریشتون بکنید دیگه هرطوری شده باید در بیاد <تصفح> الان خیلی مضحکید بعد از گفتن این حرفا از جیبش دستمالی در میار و همزمان با دستمال تلگرافی از جیبش بیرون میافته تروفیموف تلگراف رو بر میداره و میگه هیچ میدی برای زیبا به نظر رسیدن نداره لیوبوف تلگراف رو از دستش میگیره و میگه این از پاریس رسیده مردک وحشی باز ناخوشه التماس هم میکنه که برگردم و برم پیشش واقعا هم لازمه برم پاریس و پیشش باشم. عزیزم چی میتونم بکنم؟ اون مریضه اگه من نرم کی مراقبش باشه؟ کی دار رو سر وقت بده؟ حیف دوستش دارم. اون مثل سنگیه که به گردن من آویزونه. باهاش غرق میشم. ولی زندگی بدون اونم برام ممکن نیست. پتیا با چشمهایی پر از اشک میگه لطفا منو به خاطر سراحتم ببخشید. ولی اون شما رو تیغ زده آدم و رزلیه و فقط شمایید که متوجه این مسئله نیستید لیوبوف خشمگین ولی با ملایمت میگه که شما بیست و شیش هفت سال سن داری ولی هنوز دانشوی سال دومی تو سن و سال شما باید مرد بود باید اونایی که عاشقن رو درک کرد خودت هم باید آشق بشی باید آشق شد ولی به جای که آشق بشی آدم مسخره و بدریختی هستی. بعد حالا عشق من رو به سخره میگیری. تروفیموف وحشت زده میگه که چی داری میگی؟ لیوبوف با عصبانیت میگه من بالاتر از عشقم. نه خیر شما بالاتر از عشق نیستی. بلکه خیلی ساده به قول فیرس آدم بی و پایی هستی. مگه ممکنه تو این سن و سال آدم معشوقه نداشته باشه؟ تروفی موف وحشت زده میگه که چرفای وحشتناکی در حالی که سرش رو بین دو دستش گرفته از سالن خارج میشه و میگه خیلی وحشتناکه نمیتونم تحمل کنم از اینجا میرم میره ولی بلافاصله برمیگرده و میگه همه چی بین ما تموم شد لیوبو فوش سرش داد میزنه و میگه پتیا بابا سب کن آدم مزهک من فقط شوخی کردم پتیا ناگهان صدای افتادن کسی به گوش میرسه. بعد از جیغ زدن آنیا و واریا بلا فاصله صدای خندهشون شنیده میشه. آنیا بدو بدو میاد و با خنده خبر میده که <تصفح> پتیا از پله ها افتاد پایین. لیوبوف هم میگه که پتیا عجب آدم عجیبیه. رئیس ایستگاه راه آهن وسط سالن ایستاده و مشغول خوندن گناهکار تولستویه. ولی هنوز چند خطی نخونده که آهنگ والز شروع به نواختن میکنه و کتاب کنی قدر میشه و همه مشغول رقصیدن میشن. تروفیموف، آنیا، واریا و لیوبوف وارد میشن. آنیا و واریا مشغول رقص میشن و بقیه هم رقص رو تماشا میکنه. یاشا میگه چی شد پدر بزرگ؟ فیرس میگه حالم خوب نیست زمان های قدیم تو مجالس رقص ما جنرال ها و بارون ها و دریا سالارا شرکت داشتند. ولی الان دنبال کارمند پستخونه و هم میفرستیم تازه اونا هم نهاز من چرا انقدر ضعیف شدم یاشا میگه که پدر بزرگ سلم و سر بردی کاش زودتر میمردی آنیا میاد و با تشویش میگه همین الان یه نفر تواش بسخونه گفت که باقا رو امروز فروختن لیوبوف با نگرانی میگه به کی فروختن؟ آنیا میگه نگفت چه کسی و در حال رقص با تروفیموف به سالن میرن شما یه لحظه این توضیحات اضافی دیالوک ها رو تصور کنین واقعا مصحکه باغ داره به فروش میره، داره می میریزه و بعد با رقص، با تروفی موف به سالو میره. لیوبوف میگه که دارم میمیرم یاشا. برو بپرس که باغ آلبالو رو به کی فروختن. یاشا به لیوبوف میگه اجازه میدین ازتون خواهش بکنم یه لطفی در حق من کنید. اگه خواستید برید پاریس، مرحمت کنید منم با خودتون ببرید. موندن اینجا دیگه برم فایده نداره. خودتون دارین میبینید دیگه. توی ملک همه بی سوادن، ملت هم فاسد به اضافه قم و قصه و از آشپس که مزخرفه در زم فرس مرتب راه میره و کلمه های نامناسب زیر لب گرگر میکنه لطف کنید منم با خودتون ببری یاشار رو یادمونه دیگه پیش خدمت خونه این است. واریا وارد سالام میشه و به اپی میگه که تو هنوز نرفتی، عجب آدم پر روی هستی خدف حسابدار میگه اجازه بدید عرض کنم که شما حق ندارید منو بازخواست کنید. واریا میگه بازخوااستت نمی کنم دارم صحبت می کنم. هی hey, داری میری این ور اونور هیچ کاری هم انجام نمیدی با ما حسابدار رو نگه داشتیم. ولی نمی دوم واقعا برای چی؟ کدوم حساب خف رنجیده میگه اینکه کار میکنم یا راه میرم یا هرچی اصلا فقط آدم بزرگا و فهمیده ها میتونم با هم صحبت کنند. واریا میگه که، چطور جورت میکنی با من اینطوری حرف بزنی؟ زودتر از اینجا گورتو گم کن همین الان یه اصاب بر و باهاش اپیخودوف رو تهدید میکنه که الان میزنم تو سرت و فلان که اپیخودوف میترس و بیرون میره سر راه هم میگه که ازتون شکایت میکنم ولی در همین حین لپاخین وارد میشه و اسایی که دست واریاست تو هباست پای میاد و میخوره تو سر لپاخین لپاخین میگه خیلی ممنون. واری میگه ببخشید به شما صدمه ای که نزدم لپاخین میگه نه مهم نیست هرچند به زود این جای سرم ورم میکنه صداهایی از سالون به گوش میرسه که میگن لپاخین اومد یرمولای الکسیویچ اومد لیوبوف وارد میشه و میگه چرا انقدر دیر کردید؟ گایف کجاست؟ حراج انجام شد؟ حرف بزنید دیگه گایف وارد میشه خریداشو دست راست گرفته یه چند تا مثلا چیز خریده گرفته دست راستش با چپم چپ هم عشقاشو داره پاک میکنه لیوبوف میگه چی شده حرف بزن و فلان گایف جواب نمیده فقط دستشو تکمیده و با گریه به فیرس میگه بیا بگیر بیا ماهی خریدم امروز هیچی نخوردیم چقدر عذاب کشیدم فیرس بیا کمک کن لباس هم رو عوض کنم بعد با فیرس دوتایی بیرون میرن آخرش هم به لیوبوف نگفت چی شده چی به سر باق اومده ها لیوبوف واقو آلبالو فروخته شد یا نه بالاخره لوپاخین میگه بله فروخته شد لیوبوف میگه خب کی خریدش لوپاخین میگه که من خریدم بعد سکوت سالن رو فرا میگیره لیوبوف افسرد و بی حالتر از همیشه واریا هم دست کلیدش رو از کمر باز میکنه و میندازه رو زمین و میره لوپاخین خوشحال و خندون میگه من خریدم خانم آقایان من خریدم یک کمی صبر کنید من الان افکارم خیلی مخشوشه نمیتونم حرف بزنم وقتی به هراج هر رسیدیم دریگانوف اونجا بود گای فقط 15000 تا با خودش آورده بود دریگانوف علاوه بر بدهی بانک سی هزار تا پیشنهاد کرد من که دیدم و از اینجوریه چل هزار تا پیشنهاد دادم اون چل و پنج هزار تا من پنج هزار تا اون پنج تا پنج تا بالا میرفت من ده تا ده تا خب دیگه تموم شد علاوه بر بدهی من نود هزار تا پیشنهاد کردم اونم از من عقب افتاد حالا باغ آلبالو مال منه مال من <تصفح> خداوندا آقایون باغ آلبالو مال من شد به هم بگید من مستم یا دیوانه شاید هم خوابم و همه اینا به نظرم داره می رسه. هی خدا ولی یک کاش پدر و پدر بزرگ من از قبر بلند می شدن. می دیدن یرمولای کتک خورد. یرمولای بی سواد که زمنستونا پا بهرهنه میدوید حالا ملکی که از اون زیباتر در این جهان وجود نداره رو خریده. من ملکی رو خریدم که پدر بزرگ و پدر من توش برده بودن. جایی رو خریدم که اونا حق نداشتن حتی پاشون رو جلوتر از آشپسخونه بذارن نکنه خواب میبینم و اینا تصورات من هستن ببینم فقط یه رویا نیست به خودم میگم اینا همش سمری توهمات توه کلیت رو از روی زمین بر میداره و لبخند میزنه میگه واریا کلیت رو روی زمین پرت کرد خواست نشون بده که دیگه کتبانوی اینجا نیست بعد که تا همینطور که تو دستشم به صدا در میاره و میگه خب هیچ فرقی هم نمیکنه. آی نوازنده ها بنوازید دوست دارم به موسیقی شما گوش کنم همه بیاید و ببینید که یرمولای لپاخین در باغ آلبالو تبر به دست میگیره و همه ی رو قطع میکنه ما قرار اینجا ییلاغ بسازیم بچه ها و نوه های ما زندگی جدیدی خواهند داشت نوازنده ها بنوازید صدای موسیقی بلند میشه. لیوبوف روی صندلی میشینه و به تلخی گریه میکنه. لوپاخین با سرزنش میگه که آخه چرا؟ آخه چرا حرف منو گوش نکردید؟ خانوم خوب و بیچاره من. دیگه کار از کار گذشته. کاش زمان هرچه زودتر بگذره و کاش این زندگی فلاکتبار و نابسامان ما تغییر کنه پیشچیک زیر بازوش رو میگیره و با صدای خفه میگه خانم گریه نکن بیا به سالن بریم بذار تنها باشه. بیا بریم لپاخین میگه این چه وضعیه؟ موزیکو بلندتر بنوازید؟ همه چی باید اونطور که من میل دارم باشه ارباب جدید مالک با آلبالو اومده حواسش نیست و پاش به میز کوچیک سر راهش میخوره و چیزی نمونده بود که شمدونی روی زمین میفته میگه خسارت هر چیزی رو میتونم بپردازم و با پیشچیک خارج میشه در سالون هیچ کس به جز لیوبوف نیست که نشسته و گریه میکنه. صدای آروم موسیقی شنیده میشه آنیا و تروفیموف شتابان وارد میشه. آنیا به مادر نزدیک میشه و مقابلش زانو میزنه. تروفیموف در آستانه در میسته. می آنیا میگه که مادر گریه میکنی. مادر مهربون و عزیزم. مادر قشنگم. درسته که باقال حالبالو فروخته شده و دیگه وجود نداره. ولی نکن. زندگی و آینده هنوز در پیشه. روح پاک و خوبت با توه. بیا عزیزم. بیا با من بریم. باغ جدیدی درست میکنیم. حتی با شکوه تر از این باغ وقتی ببینیش مثل خورشید در غروب شادی امیق و آرامش روحت را رو در بر میگیره. و میخندیم. مادر عزیزم. بلند شو. بلند شو باید بریم. دوباره تو اتاق بچه ها هستیم، همون جایی که نمایشنامه ازش شروع شد. تابلوها رو از روی دیوار برداشتن، مقداری اساسیه برای فروشه که اینجا و اونجا انباشته شدن. تقریبا همه جا خالی بودن احساس میشه. کنار در خروجی تعداد زیادی چمدون و بقچه و ساک روی هم چیده شده. در سمت چپ باز و صدای واریا و آنیا از اونجا شنیده میشه. لوپاخین ایستاده و منتظره. یاشا یک سینی دستش داره که استکانهای شامپاین توش دیده میشه. اپیخودف هم تو اتاق جلوی مشغول بستن یه صندوقه. از ته صحنه سر و صدای دهقانهایی که برای خداحافظی اومدن به گوش میرسه. صدای گایف میاد که میگه برادرها از شما ممنونم خیلی ممنونم ولبل آروم میگیره لیوبوف و گایف از اتاق جلو وارد میشن لیوبوف دیگه گریه نمیکنه ولی رنگ پریده است و صورتش میلرزه و قادر به صحبت نیست گایف میگه لیوبا تو کیف پولت رو به اونا دادی نباید این کار رو میکردی گفت میگه دست خودم نیست نمیتونم هر دو خارج میشه لپاخین میگه با کمال احترام خواهش میکنم بیاید و شامپاین بخورید اینو از راهن خریدم میل ندارید؟ خب منم نمیخورم با اینکه ماه اکتبره ولی هوا آفتابی و مثل تابستون آرومه خانومها و آقایون در نظر داشته باشید که تا حرکت قطار فقط چهل و شیش دقیقه باقی مونده. یعنی این که 20 دقیقه دیگه باید به ایستگاه بریم کمی عجله کنید. تروفیموف در حالی که پالتوی به تن داره از حیات وارد میشه. میگه به نظرم وقت رفتن از پا آمادن بلکه خدا میدونه گالش هم کجا گم و گور شدن. لپاخین میگه منم به خارکوف میرم. با شما توی قطار هستم. زمستون رو خارکوف میمونم. تمام مدت داشتم با شما اینجا بیکار میگشتم. داشتم از بیکاری رنج میبردم. بیکار نمیتونم زندگی کنم. ها میفهمی؟ الان نمیدونم با دستام چی کار کنم. به طور عجیبی تکون میخورن. تروفی موف میگه ما... الان از اینجا میریم و شما دوباره میتونید به کارهای مفیدتون بپردازید. شاید ما دیگه ایچ بخش دیگر رو نبینیم. اجازه بدید قبل از رفتن یه نصیحت بهتون بکنم. دستات رو انقدر تکون نده. این عادت رو کنار بذار. تکون دادن دستات رو میگم. همین که خونه های میسازی، یعلاق نشینار کدوم برای خودشون ارباب جدیدی میشن هم نوعی دست تکون ولی از همه اینا گذشته باید بگم که از تو خوشم میاد تو مثل هنرمنده انگشت های زریفی داری همینطور هم روح حساس و لطیفی داری لپاخین اونو در آغوش میگیره و میگه خدا حافظ عزیزم به خاطر همه چیز ازت ممنونم تروفی میگه فقط گالش هم نیستن واریا از اتاق کناری میگه بابا این آشغالاتونو بردارید یه جفت گالش لاستیکی رو هم پرت میکنه وسط صحنه لوپاخین میگه من بهار هزار هکتار خشخاش کاشتم و چل هزار روبل خالص کاسبی کردم اگه بخوای میتونم به پول قرض بدم تروفیموف میگه حتی اگه دویست هزار روبلم بهم بدی من نمیگیرم من آدم آزادی هستم پول برای من هیچ ارزشی نداره من قوی و مغرور هستم انسانیت به سمت حقیقت و خوشبختی پیش میره و منم در صف اول اون هستم لوپاخین آه می کشه و میگه که خب وقت رفتنه خدا حافظ جانم ما که به هم تکبر نمیفروشیم. اما زندگی راه خودشو میره وقتی زیاد کار میکنم مغزم روشنتر میشه و میفهمم که چرا زندم ولی چقدر زیادن کسایی که تو روسیه که نمیدونن چرا زندن انگار گایف یه شغل توی بانک قبول کرده با 6 هزار روبل در سال آنیا کنار در وایساده و میگه مادرم از شما خواهش میکنه که تا وقتی که ما از اینجا نرفتیم درختار رو قد نکنید لپاخین و تروفیموف بیرون میرن دونیاشا مرتب دوروبر اساسیه میگرده و وقتی که یاشا تنها میشه بهش نزدیک میشه و میگه یاشا کاش یه بار هم شده به من نگاه میکردی. شما داری منو ترک میکنی. یاشا میگه چرا گریه میکنی؟ شش روز دیگه من دوباره پاریسم. فردا قطار سری سیر میاد و من میشینم توش و به یه چشم به هم زدن از نظرها پنهام میشم. طوری که حتی نمیشه باور کرد. زنده باید فرانسه اینجا به درد من نمیخوره نمیتونم اینجا زندگی کنم شامپایی مینوشه و میگه که چرا گریه میکنی؟ اگه رفتاری شایسته میداشتی که اصلا گریه دنیا دونیاشا تو آینه دستی خودشو نگاه میکنه و به صورتش پودر میزنه. میگه از پاریس برام نامه بفرست یاشا آخه من شما رو خیلی دوست دارم بی اندازه دوست دارم یاشا من موجود حساسیم لیوبوف گایف آنیا و شارلوتا وارد میشن. گایف میگه دیگه باید بریم وقتی نمونده بعد به یاشا نگاه میکنه و میگه این بوی ماهی شور از کجا میاد لیوبوف میگه که ده دقیقه دیگه سوار کالسکه میشیم خدا حافظ خونه ای عزیز خدا حافظ پدر بزرگ پیر زمستون که بگذره و بهار بیاد دیگه اثری از تو نمیمونه خرابت میکنن چقدر این دیوارها رو نگاه کردم دخترش رو با حرارت میبوسه و میگه گنجینه من تو میدرخشی چشمات مثل الماس برق میزنن خوشحالی آنیا میگه خیلی خیلی مادر ما زندگی جدیدی شروع میکنیم گایف با شادمانی میگه حقیقتاً در حال حاضر همه چی رو به راه قبل از فروش باغ آلبالو بالو مسترب بودیم و رنج میکشیدیم ولی موقعی که مسئله به طور قطعی حل شد هم آروم شدیم هم کمی خوشحال من الان کارمند بانکم لیوبا هم راحت به نظر میرسه لیوباف میگه که بله درست اصابم آروم شده یاشا اساسیه منو ببرید وقت رفتن بعد با آنیا میگه دخترکم ما به زودی هم دیگر رو میبینیم من با پولهایی که مادر بزرگ برای تو برای خرید ملک فرستاده بود تو پاریس زندگی میکنم زنده باد مادر بزرگ ولی این پولها مدت زیادی نمیمونن و تموم میشن آنیا هم میگه که منم به زودی میام تو درس میخونم و کار میکنم و بهت کمک میکنم بعدش هم با هم کتاب میخونیم و همه چی خوب و خوشه لیوبوف میگه آره تایید میکنه تا اینکه پیشچیک میاد تو میگه صبر کنید صبر کنید نفسی تازه کنم چه هزا کشیدم یه آب به من میدید گایف میگه حتما باز بی پول اومدی من بنده متی شما از شر گناه فرار میکنم و میره. پیشچیک به لوپاخین میگه آخ تو اینجا خوشحالم تو رو میبینم آدم خیلی عاقل. بیا بگیر بیا. مقداری پول بهش میده. 400 روبل 840 تای دیگه هم بده بدهکارم. لوپاخین با نو باوری شونه هاشو بالا میندازه و میگه خواب میبینم از کجا وردی. پیشچیک میگه اتفاق عجیبی افتاده. انگلیسی ها پیش من اومدن و تو زمین من یه نوع گل سفید پیدا کردن. به لیوبوف میگه بفرمایید این 400 تا مال شما خانم زیبا خانم دل رو با. بقیه رو هم بعدم میدم. همین الان یه جوونی تو واگون قطار تعریف میکرد که گویا یه فیلسوف بزرگ توصیه کرده که از پشت بام ها پایین بپرید. میگه هدف از زندگی تماما تو همین خلاصه میشه. تصور کنید. لپاخین میگه درباره کدوم انگلیسی صحبت میکردی؟ پیشچیک میگه یه بخشی از زمینم رو با گل 24 سال به اونا اجاره دادم. <تصفح> ببخشید. الان اصلا وقت ندارم و باید باز هم به جاهای دیگه برم. باید برم پیش زنویه کوف. بعدش هم کاردامانوف. به همه بده کارم هم خلاصه. پنجشنبه بر میگردم. لیوبوف میگه ما همین الان داریم به شهر میریم فردا هم میریم خارج پیشتیک میگه اوه تازه متوجه مبلا و چمدونه شدم خب مهم نیست مهم نیست چقدر آدم های هستن اینگلیسی ها رو میگم مهم نیست خوشبخت بشید خدا بهتون کمک کنه. بعدش هم میره لیوبوف میگه حالا میتونیم بریم از اینجا با دو تا مشقلی فکری میرم اول مربوط به فیرسه که ناخوش و بردنش بیمارستان. نارتی دوم هم, هم به خاطر واریاست. اون عادت کرده که صبح زود بلند شه و کار کنه. حالا بدون کار مثل ماهی میمونه که از آب گرفته باشنش. لاغر و رنگ پریده شده. بیچاره مرتب گریه میکنه. یرمولای الکسیویچ شما خوب میدونید که من آرزو داشتم اون زن شما بشه. معلوم بود که شما هم میخوایید با اون ازدواج کنید. شما رو دوست داره شما هم از اون خوشتون میاد نمیدونم نمیفهمم چرا شما از هم دوری میکنید لوپاخین میگه اعتراف میکنم خودم هم نمیدونم چرا چقدر همین چی عجیبه نه اگه انوزم وقت هست من همین الان حاضرم سریع تمومش کنیم ولی اگه شما نباشید احساس میکنم که نمیتونم ازش خواستگاری کنم لیوبوف میگه که عالیه دقیقا یک دقیقه وقت لازم داره همین الان صداش میکنم یاشا بیایید بریم بیرون من الان صداش میکنم واریا هر چی دم دست داری بذار رو زمین بیا اینجا آقا کارت داره صداش میکنه و بعد با یاشا بیرون میرن واریا وارد میشه و چند دقیقه به اساسی نگاه میکنه و میگه عجیبه ها پیداش نمیکنم لپاقین میگه حالا تو میخای کجا بری واریا میگه میرم پیش خانواده راگولین قرار به عنوان کتبانو کارهای خونه اونا رو به بگیرم لپاخین میگه اونا توی یاش زندگی میکنن هفتاد ورست با اینجا فاصله داره سکوت میکنه و میگه بله دیگه وقت زندگی تو این خونه به سر اومد ورست یه مقیاس من منسوخ شده روسیه معادل یک کیلومتر و 668 متر که حالا این شهری که مطمئن نیستم اسمشو درست گفتم هفتاد ورست با اینجا فاصله داره واریا در حالی که به اساسیه نگاه میکنه میگه که کجا گذاشتمش؟ شاید توی صندوق باشه آره آره زندگی توی این خونه به سر رسیده دیگه وجود ندار لپاقین میگه اگه یادتون باشه پارسال این موقع برف اومده بوده ولی الان هوا آروم و آفتابیه فقط یه کمی سرده خونک 3 درجه زیر سفر واریا میگه نمیدونم چقدر من دماسنجو رو نگاه نکردم دماسنج ما شکسته صدایی از حیات لپاخین رو صدا میزد. لپاخین که انگار فقط منتظر این صدا بوده میگه همین الان برمیگردم و خارج میشه. واریا در حالی که کف اتاق نشسته سر رو روی بخچه لباس ها میذا آهسته گریه میکنه. در باز میشه و لیوبوف با احتیاط وارد میشه. چی شد؟ باید بریم واریا دیگه گریه نمی کنه و میگه بل ما در جان وقت رفتنه من به خانه راگولین ها میرم، فقط کاش به قطار دیر نرسم. آنیا، گایف و شارلوتا وارد میشن. همین خدمتکارا و سورچی ها جمع شدن، اپی خودوف ها اساسی دنبال چیزی میگرد. گایف میگه دوست داره من، ما این خونه رو برای همیشه ترک میکنیم. اصلا تو چنین موقعیتی میشه حرف نزد؟ مگه میشه حالا که موقع خداحافظی رسیده؟ از بیان احساساتی که همه وجودمو گرفته خودداری کنم. دایجان لازم نیست. اینو آنیا و واریا با التماس میگن. گایف افسرده میگه خب باش حرف نمیزنم. تروفیموف و لوپاخین وارد میشن و تروفیموف میگه وقت رفتنه. لیوبوف میگه من یه دقیقه دیگه اینجا میمونم. راستشو بگم تا لا هیچ وقت دیوارها و سقف‌ها یا این خونه رو اینطوری ندیده بودم. ولی حالا با حسرت و عشق امیغن بهشون نگاه میکنم گایف میگه که یادم میاد وقتی که شیش سالم بود روز عید تسلیس روی تاخچه این پنجره نشسته بودم و پدرم که به کلیسا میرفت رو تماشا میکردم خانم ها آقایون میریم سوار کالسکه بشید الان قطار میرسه اینو تروفی موف میگه و میپره وسط حرف گایف آنیا میگه خدا حافظ خونه خدا حافظ زندگی کهنه. تروفیموف میگه سلام زندگی تازه و دوتایی با آنیا بیرون میره. لپاخین میگه پس آقایان تا فصل بهار برید. خدا حافظ و میره. لیوبوف و گایف تنها میمونن. انگار منتظر این لحظه بودن تا همو بغل کنن و آروم برای چیزی که از دست رفته گریه کنن. کایف با ناامیدی به حال خواهرش افسوس میخوره و میگه خواهرم خواهرم لیوبوفن میگه باغ باغ عزیز باغ خوب و زیبای من زندگی من جوانی من خوشبختی من خدافس میخوام برای آخرین بار به این دیوارا و پنجره ها نگاه کنم مادر مرحومم دوست داشت تو این اتاق قدم بزنه صدای آنیا و تروفی شنیده میشه که مادر رو صدا میزنه یوبوف میگه که دارم میام و خارج میشه صحنه خالیه صدای چرخش کلیدها و قفل شدن درها شنیده میشه بعد صدای کالسکه ها شنیده میشه که دارم میرن. سکوت همه جا رو گرفت صدای قدمهایی به گوش میرسه و از سمت راست فیرس نمایان میشه. مثل همیشه کت و جلیقه سفید پوشیده و کفش راحتی به پا داره. مشخصه که بیماره. به طرف در میره و دستگیره رو تکون میده. قفله. همه رفته. روی کاناپه میشینه و میگه منو فراموش کردم. اهمیتی نداره همینجا میشینم نکنه گایه پالتوی پوستش رو نپوشیده و با پالتوی معمولی رفته مواظبش نبودم اونم که جوانه و خام دراز میکشه و میگه اصلا دیگه قوتی ندارم. دیگه هیچی ازم نمون آه آدم بی دست و پا بعد چشماش رو میبند و بی حرکت میمونه صدایی از دور شنیده میشه گویی این صدا از آسمون میاد صدایی هر آور و محزون صدایی شبیه به پاره شدن سیم یک ساز فقط صدای ضربه زدن تبر به درخت شنیده میشه Thank mm -hmm. you. چیزی که شنیدید قسمت نوزدهم پادکست علف نمایشنامه باغ بالو آخرین اثر آنتون چه خوف بود؟ در مورد این نمایشنامه حرف زیاده مثلا یکی از مهمترین تمهای نمایشنامه تغییر و گذر از سیستم فعودال ارباب رعیتی و قدرت گرفتن طبقه کارگر. پس باید به دو تا تاریخ مهم دقت کنیم آزادی دهقان که توی نمای اشنامه بهش اشاره شد سال 1861 و انقلاب روسیه سال 1919 موقعی که نمای اشنامه نوشته شده جایی بین این دوتا تاریخه و انقلاب هنوز اتفاق نیفتاده خیلی جالبه انقلاب هنوز اتفاق نیفتاده اما همه جای نمای اشنامه رد پای تغییر توی وضعیت سیاسی اجتماعی روسیه رو می‌بینیم. می‌بینیم که اشراف این نمایشتما آدم های بیکار و بیخیال و احمقی هستن که دست رو دست گذاشتن و دارایاشون رو دارن از دست میدن و حتی طوری روز مزایده ملک ها با اججادیشون مهمونی و رقص گرفتن به هوشدار آدم های هم توجه نمی کنن. از اون طرف آدم های طبقه کارگر که لپاخین نمایندشونه با تلاش و پشت کار دارن موفق میشن و جای اشراف رو میگیرن از طریق کاراکتر تروفیموف که خیلی به شخص رو مخ من بود و سخنرانی های آتشینش یه سری نقد به طبقه روشن فکر و جامعه هم بینیم که فقط فلسفه بافی میکنن و در واقع کاری انجام نمیدن اما از اون طرف به نظر میاد تروفی هم به طور مزهکی خودش فقط آدم سخنران و منفعیلیه که حرف میزنه فقط و را به را هم یاد گرفته از اهمیت کار میگه اما کار واقعی رو داره توی نمشنامه لپاخین و امثال لپاخین انجام میده با غالبالو که توی نمایشنامه نماد اشرافیت آخر نمایشنامه خراب میشه و چیزی ازش باقی نمیمونه و فیرس کسی که نخواست آزاد باشه و عمدن تو سیستم ارباب رعیتی باقی مونده آخرش تنها و فراموش شده هم از سمت رعیت ها هم از سمت اشراف می میره و ساکنین سربتمند با غالبالو میرن و ار رو برای دهقان ها و دهقانزاده ها خالی میکنن پیشچیک زمینش رو به خارجی ها اجاره میده تقریبا برای هیچ و پوچ و گایف یه مرد عربابزاده نهایتاً مجبور میشه بره و توی بانک کار کنه اونم با حقوق ناچیز 6 هزار روبل در سال با این تفاسیر شاید به نظر بیاد چه کمونیست و طرفتاره تفکرات مارکس بود اما حتی اقل خودش هیچ وقت خودش رو متعلق به فرقه خاصی ندونست و البته همینطور که تقریبا درباره تمام کارکترها گفتیم چه خوف توی این نمایش به گروه های مختلفی از مردم نقد میکنه و انگار کسی که تفکرات و آثار چه رو چپی یا می میدونه انگار میخواد اونا رو مصادره کنه به نفع یک جریان خاص این نمایشنامه صرفن عکس العمل چخوف به عنوان یه بیننده تیزبین به تحولات اطرافش اون هم در دورانی که صدای مدرنیته مثل آره آخر نمایشنامه به گوش میرسه که داره سنت رو از بین میبره درباره این نمایشنامه کلی نقد و تحلیل نوشته شده و کلی نماتاش بررسی شدن که میتونید دربارهش بخونید و حتی میتونه ای باشه برای مطالعه درباره روسیه اون زمان من این همه رو دوست داشتم حقیقتش برداشت های مختلفی ممکنه توی بره های مختلفی از زمان با آدم ها بده که البته این نشونه خوبیه به امان یک اثر همچنان زنده و پویا در پایان این اپیزود باید تشکر کنم از مریم رحیمی برای نوشتن متن اولیه این اپیزود از مهدیس سفری برای ویرایش متن و از شکیبا اصدی برای تدوین این اپیزود از شما هم ممنونم که تا اینجا پادکست همراه من بودید امیدوارم سالم بمونید اگر پادکست رو دوست داشتید برای دوستاتون هم بفرستید مراقب خودتون باشید من مهدی هستم و شما قسمت 19 همه پادکست علف رو که در آبان 1400 منتشر شده شنیدید تا قسمت آینده این نقش ماند از غلمت یادگار عمر. میتناید کست.